بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني في الذكر والحث باب دوظم المعاني در رابط بذكر وحس يعني كلام يذكر بشي حث بشي إذا أريد إفادة السامع حكما فأي لفظين يدل على معنى فيه فالاصل ذكره هرگاه خاصه شود حکمی به شنونده به سامه افاده شود فا فای لفظ يدل على معنا فی فالاصل ذكره هر لفظی که دلالت بر معنایی میکند اصل است که اون لفظ چه بشه؟ ذکر بشه تو میخوای یه حکمی رو بشنوانده افاده کنی برسولی خوب هر لفظی که یک معنای میرسونه اصل بر اینه که اون لفظ چه بشه؟ ذکر بشه و ایو لفظ علم من الکلامی لدلالة باقیه علیه فالأصل حذفه و هر لفظی که دانسته میشه از کلام بخاطر دلالت کردن باقیمانده باقی باقی الفاظ بر اون معنا بر معنای اون لفظ اصل این است که حذف بشه و هر لفظی که دانسته میشه از کلام بخاطر دلالت کردن با پیمانده کلام بر اون اصل برین است که اون لفظ چه بشه؟ حس چون کلمات دیگه‌ای در اون لأ در اون موجود دارند که اون معنا رو بیرسونند که اون معنا رو چکار بکنند؟ و اذا تعارض هذان الاصلانی فلا یعدل ان مقتزا احدهما الى مقتزا الاخری الا لداعه و زمانی که این دو تا اصل با همدیگر دیگر تعارض داشتند آ یک اصلی میگه ذکر بشه و یک اصلی میگه ذکر نشه و هرگاه این دو تا اصل با همدیگر دیگر تعارض داشتند فلا یعدل یعدلو ان مقتضا احده ما الى الآخر الاخر قدول کرده نمیشه روی گردانده نمیشه از مقتضای یکی از دو اصل به مقتضای اصل دیگر الا لدائن مگر خاطر سبب و انگیزه یکی گفت حس بشه دیگری گفت حس نشه شما نمیتونی مقتضای این اصل رو ترک و مقتضای اصل دیگر رو بگیری مگر این که اونجا چی باشه انگیزه ای فتود داشته باشه خوب دواع ذکر از انگیزه های این من تبعیز هست پس برخی از اون انگیزه های چی ذکر شما میتونه حذفش کنید ولی انگیزه ذکر اونجا وجود داره دواعی ذکر برخی از انگیزه های ذکر کردن لفظ یک زیادت التقریری والاظاحی نحو اولئک على هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون یکی از اون انگیزه ها تثبیت و آشکار کردن زیادت بر تثبیت و بر آشکار کردن سخن یا به تثبیت کردن و آشکار کردن سخن افزوده افزودن شما بیایید آشکار بودن سخن رو بی افزایی یا بیشتر تثبیتش کنی یا بیشتر چه کارش کنی؟ یک از انگیز اینه که بیایی ذکر بکنی معنی ده اولائکه علا ربهم و اولائکه هم المفلحون اینجا اولائکه رو باره در ادامه آیچ کار کردی ذکر کردی جهت تثبیت و بیشتر آشکار کردن سخن آنان بر هدایتی از جانب پروردگارشان هستند و آنان همان راستگاران هستند و کل تثیقتی بلقرینه دیگه چی هست؟ دو وقل لتو ثقتی بالقرینه. انگیزه دیگه ای که ذکر میشه چه هست لفظ کم بودن اعتماد به قرینه اون قرینه ای که تو به خاطر اون میتونی حذف کنی اعتماد بر آن کم باشد اعتماد بر اون قرینه چه باشد؟ لضعفها بخاطر ضعیف بودن قرینه. آخه یکی از علتای هست وجود قرینه هست دیگه. یکی از علت‌ها چی هست؟ میگه اعتماد کردن بر قرینه کم باشه لضعفها یا بخاطر ضعیف بودن اون قرینه او ضعف فهم الصابع یا ضعیف بودن فهمش نبنده. چون فهم شنونده ضعیفه تو میای اونو لفظو چکار میکنی ذکر میکنی نحو زیدون نعم الصدیق مانند زید بهترین دوست هست زیدون نعم الصدیق تقول ذلك اذا سبق لك ذكر زيداً چه زمان اینو میگی زمانی که قبل از اون یاد زید در میان آمده باشد وطال عهد الصامع به و احد الصامع و طال اهد سامعی به و مدت زمانی که سامع ذکر زید روشنیده، ازش مدت طولانی گذاشته باشه ازش مدت بله او ذکر معه كلام فی شأن غیری یاد در این میان سخنی در رابطه با شخص دیگه ای مطرح شده باشه ببین در یک سخنی یادی از زید شده است ولی این یاد زید مدتش طولانی شده یا در این میان از شخص دیگه ای سخنی شده است اینجا اگر بیاد زید روز ذکر نکند بگنی ما صدیقو اون قرینه ای که شما میتونید زید روز حذف کنید اون قرینه دیگه چیه اعتماد بر اون کم شده سست شده یا این احتمال داره که شنونده اینو به خوبی نفهمه لذا بیای لفظش کار میکنی ذکرش میکنی بگی نعم نعمت صديق، زیادن چیکار میکنی ما بوسه؟ ذکرش میکنی. جان؟ بله. پس دوباره مختصرش میکنم کم بودن اعتماد برقرینه به خاطر ضعیف بودن قرینه یا به خاطر ضعیف بودن فهم شنونده مانند این که بگویی زید نعم صدیق در حالی که قبل از این ذکر زید شده است ولی مدت زمانی رد شده یا این که در این میان از شخص دیگی هم بله به شخص دیگی هم پرداخته شده است لذا جهت تقویت میاد لفظو چکار میکنه؟ ذکر میکنه. سه و تعریزو به غبا و یکی دیگر از انگیزه های ذکر چه هست؟ کنایه زدن این تعریض در قرآن وارد وارث شده است او ارستن بهی ها؟ آ؟ بله همونجا کنایتان كناه... كناه... خواستگاری کردنه اینجا بساله همین معنیش و تعریضو به غباوت سامه کنایه زدن به خنگ بودن شنونده انتون بیایی اینقدر سریح این الفاظو رو ذکر میکنی که این شنونده آقا بدون این, ذکر... بدون این سریح بودن بدون این ذکر کردن نمیفهمه نحو امرون قال کذا فی جواب ماذا قال امر در جواب شخصی که میگه ماذا قال امر امر چی گفت و شما میتونید رو حذف کنید دیگه قرینه وجود داره اما اگر بیای بگی امرون قال کذا یکی از چیه همین کنایه بودن یا کنایه زدن به کنفهمی شنونده است؟ به غبی بودن شنونده هست؟ چهار و تص و على لا تعتا له انکارو؟ چهارین انگیزه چست؟ و التسجيل از سامع حتی لایت اتا له الانکار تسجیل کردن ثبت و ضبط کردن شنونده تا امکان انکار براش نباشه. تو هر تو تمام الفاظ و ذکر میکنی تا شنونده نتونه انکاری داشته باشه. نتونه چی داشته باشه؟ کما اذا قال الحاکم ولی شاهد مانند که زمانی که حاکم قاضی به شاهد بگوید هل اقر زیدون هذا به عليه کذا آیا این آغای زید اقرار کرده است که برش هم این چیز هست فیقوله شاهد شاهد میگوید نعام دیگه بله زیدون هذا اقر به عليه کذا این آغازید اقرار کرده است که بر علاوهش این و این هست، این چیز هست. پس یکی از انگیزه های ذکر ثبت و ثب بر سامی هست تا امکان انکار برایش نباشد. چنچ و تعجب اذا کان الحکم قریب تعجب کردن یا اظهار تهجب کردن زمانی که حکم چی باشد نحو مانند علی یل یقاوم الاسد علی مقاومت میکند با چی با شیر فقول ذالک ما اسبقی ذکریه ایروبگی با وجودی که قبل از این ذکر علی شده است علی یل یقاوم الاسد علی ین شجولین انگیزه و تعظیم و اهانت اذا كان اللفظ يفيد ذلك تعظیم کردن و اهانت کردن زمانی که لفظ این معنا را ifade کند کان یسالک يسألك سائل مانند این که پرسنده ای از تو بپرسد فل رجع القاعد آیا امید برگشت فرمانده برگشت تو در جواب فتقول تو در جواب میگی رجع المنصور، اگر بخوای تعظیمش کنی میگی، چی؟ رجعال تو میتونی تنها بگی نعم رجع، یا نعم اما ذکر میتونی چکار میکنی؟ رجع المنصورو بازگشت کیروس آه؟ یا میگی رجع المحضوبو بازگشتی چی کس خورده اگه میخوایی انیزه از ذکر چی باشه احانت باشه پس اینجا مسئله دیگه واضح گشت چه زمان احانت و چه زمان خب چند تا تا کار کندیم؟ و به دواعل الحص بقیه انگیزهای حصف رو نه چیز ذکر رو آورده بود نه؟ و از انگیزه های حصف یا برخی از انگیزه های حصف البته کلمه از همان ترکمن در عربی تبعیز رو می رسوند از هم در فارسی رو می رسوند خودش دیگه اصلا کلمه برخی رو هم نگی بگی از انگیزه های حصف دلالت بر می میکنه. اخفاء الامری اما غیر المخاطبی پوشاندن امر از غیر از مخاطب تو با مخاطب حرف میزنی ولی میخوای این مسئله رو از دیگران چکار کنی؟ بپوشونی لذا بیایی؟ حذف میکنی بیایی چکار میکنی؟ نحو اقبل ترید و مثلا مانند این که میگی روی کرد و منظورت کی باشه؟ علی باشه مثلا آه علی رو ذکر نمی‌کوین فقط میگه عقبلًا فا امر از غیر از مخاطب چی بشه مابوسا مخفی بشه و تعتل انکار ایندل حاجت و امکان انکار باشه هنگام نیاس و دیگر چی و دیگرین که پس یکی از انگیزه های هست پوشاندن مسئله از غیر مخاطب بود دیگری چه و تاقتل انکار اندال الحاجه ممكن بودن انکار به هنگام دیاس آقا منظورم کسی دیگه بوده منظورم نحو لئیم حسیس مانند این که بگویی لئیم حسیس پس فرومایه بعد ذکر شخص معین بعد از ذکر کردن شخصی معین بعد از ذکر کردن شما جان لعیم یعنی انسان پست ملامت شده خب اینجا شما مصند اله و ذکر نمی کنید مصند اله و ذکر مصند رو فقط ذکر میکنید که همون لعیمون حسیسون هست اینجا انگیزه چه هست؟ انگیزه این هست که امکان انکار کردن به هنگام نیاز وجود داشته باشد. دیگری چه هست؟ و التنبیه و علا تعییل آگاه کردن بر این که محظوف مشخص هست تعیین هست هشدار دادن آگاه کردن بر این که محظوف چه هست مشخص هست مانند خالق كل شیء. خب اینجا شما ذکر نمیکنید الله حسن میکنید الله چکار میکنید الله خالق و کلی شی فس خوشدار دادن بر معین بودن محظوف و اگر ولو ادعا ولو اگر چه چه باشد ادعائی باشد یعنی هشدار دادن بر اینکه این محزوف یا حقیقتا مشخص است یا اینکه مشخص بودن محظوف ادعا شو شود یا اینکه مشخص بودن محظوف چه شود نحو خالق کل شی خب اینجا که مشخصه و وهاب العلوف و بخشندهی هزاران نفر و بخشنده هزاران محزوفه محزوفه و وحاب العلوفه محزوفه چه هست؟ محزوفه شما بگی بخشنده هزاران نفر منظورت شاهه ولی اونو ذکر نمی کنی یه خاله بلیشه اینجا محزوفه بله در هر محزوفه الان انگیزه شده رو ذکر که چرا حسد شده به خاطر که پشتار میده آگاه میکنه که محضوف مشخصه محضوف چیه؟ و انگیزه دیگر و اختبار و تنبه سامعی و مقداری تنبهی آزمودن تست کردن آزماش کردن آگاه بودن شنونده متوجه بودن شنونده یا مقدار فهمیدگی و خوشیاری و آگاهیش میخواد آزمایش کنه که این شنونده چقدر هوشمنده فهمیده هست چقدر انسان آگاهیه نحو نوره مستفاد من نور شمس و واسطه اقدل کواکب ولی این جمله اینجا که گفته نورهو مصطفیدون من نور شمسی و واسطتو اقدل کواکبی اینجا مصند الیه ذکر نشده اونی که داره در دار دار رابطه با اون سوک میویگه ذکر نشده که میخواد بفهمه که آقایا اینجا آی شنوانده منظور و متوجه میشه که اون چیزی که رو از خورشید میگیره چه هست یا چی نیست یا نمیفهمه و چه چیزی نور رو هم به نور شخص نورش و گرفته می شود از نور خورشید و دانه گردنبند کوکب هاست اون چیه؟ ماه اون چیه؟ ولی ماه ذکر نشد قمر ذکر نشد انگیزه اینجا از حشت که بود آزمایش کردن آزماش کردن شنونده که آکیوش در چه ساعتیه؟ وضیق المقامی او لی و انگیزه دیگر از حس تنگ بودن موقعیت آقا موقعیت دیگونه یه که نه میشه سخنانو ودر آزاد کشید، نه میشه چکار کرد لذا حس میکنه. اول توجهان یا به خاطر درد و المقام اما لتوجه او هم گفت اینجا خب به خاطر فس تانگنا بودنم جايقه مقام يا بخاطر درد من نحو قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحسن طويل بمن قفت كيف أنت تو چطوري قلت عليل قفتم مريز قفتم چاسم سهر دائم وحسن بیخابی دائمی و حضن طویل و اندوه درست آم او غیت منو گفت چطوری؟ و اما لخوفی هواتی فرصتت نحو قول سیادی غزالو و یا اینکه انگیزه حس به خاطر ترس از دست رفتن فرصت تا جمله رو طولانی کن آقا فرصت رفته مانند سخن سیاد مانند سخن کی غزالو باید که با به دوستا دیگهش بگه که این آهوه اگر بیاد جمله رو طولانی کنه مسند و بگه مسند الهه اون موقع فرصت در دست میره بگه غذاب بگه چی؟ آهو <سؤال> <سؤال> <سؤال> یا اونجا که گفته بود قال علی کیف انت قلت <سؤال> علی قلت انا علی خوب و تعظیم و تحقیر و دیگر و از دیگر انگیزه های خصب جست تحقیر کردن تعظیم کردن بزرگ داشتن لسانهی ان لسانک تا محفوظ نگهداری داری او را از زبانت تا محفوظ داری او را از سیت از زبانت به خاطر عظمت که ازمت داره اونو بر زبانت نمیاری و التحقیر یا بخاطر که اینکه کوچکه انسان حقیریه او صونه لسانکه عنه زبانت رو ازود محفوظ هم همیداره پس و تعظیم و التحقیر انگیزه دیگر حصف تعظیم و تحقیر هست لصونه ان لسانک بخاطر دیگه داشتنه او محفوظ کردن او از زبانت. از پلیدی زبانت، آوازان لسانی که انج، یا نگهداشتن زبان تو از کوچیکی او. فالاول نحو، اولی ماننده نجوم سماهن، نجوم سماهن. شما اسم اونا رو نمی اونا رو ذکر نمی کنی. پس حسف شن بکنید هم نجوب و سمائن بلکه بگی چی؟ آسمان ستارگان آسمان اند ستارگان آسمان اند و الثانی نحو و الدوو که منتحقیر باشه باننده قومون اذا اکلو اخفو حدیثهم ها باز هم اینجا مسند اله چکار کردی بخاطر تحقیر کردن بخاطر این که زبانت رو از اسم بردنشون پاک نگهداری، محفوظ کنی حسفش کردی مسند اله خوب این المکم اسرائی شیریست قومون اذا اکلو اخفو حدیثهم و من رتاج البابی والدال این تو آنها قومی هستند زمانی که بخورند آهسته صحبت میکنند یعنی قوم بدبخت هستند زمانی که بخورند آهسته صحبت میکنند تا کسی متوجه نشه سخن رو نشنوه خب و المحافظه على وزن او سجن و از دیگر انگیزه های حفظ محافظت کردن بر وزن محافظت کردن بر چی وزن یا سجع سجع جا سجع در در چی پیش میاد در نصر تو واجب وزن در در نصر بس محافظة بر وزن ومحافظة برتق سجح بالي مثلا بعدين برات ميدا بيجان إيه سخن مسجح هست ما ودعك ربك وما قال إذا ما يربكون ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى آوى وهدا وأغنى إلى همسجند خب محافظت کردن بر وزن يا بر سجع فالاول نحف محافظت کردن بر وزن مانند نحلو ما عندنا و انت بما عندك راض و مختلف پس برای این که وزن در نظم یا در سجم محفوظ بماند در وزن مانند وزن در نظم مانند نحن بما عندنا و انت بما عندك راض و الرایو مختلف ما به آنچه در نظم ماست و تو به آنچه در نزد تو راضی هستی در آس اینجوری میگفت نحن به ما اندنا راضون و انت به ما راضی ما به آنچه در نزد ما هست حس راضی هستی و تو به آنچه در نزد تو هست حس هستی راضی هستی و رأی و مختلفون در حالی که نظریه و دیدگاه متفاوت است فرق داره پس اینجا راضونه به خاطر اینکه وزن شیر به هم نخوره حس شده پس یکی از انگیزه های حس محافظت بر وزن شعر هست یا سجع نصر سجع نصر مانند ما ودعک ربوک و ما قلا در اصل جوری هست ما ودعك ربك وما و ما قلعه که پرواردگارت تو را رهانه کرده است و ما قلا و بر تو خشم نگرفته است و تو را دشمن نگرفته است ما ودعك ربك وما و ما قلعه اما سجد در این سوره سوره مبارکه بحا بخونش ما برسا اگر این قلاب کمی گفت ساج چی می‌شد به هم می‌خورد ساج چی می‌شد این واژدش در ساج به هم می‌خورد بگم نمی‌گیم واژد در ساج به هم می‌خورد ساجش به هم به هم می‌خورد ساجش چی می‌شد بس محافظت بر وزن مانند نحن بما اندنا و انت بما اندك راضن و رأي مختلفن اگر اینجا میومد نحن بما اندنا راضون به هم بکرد چی باله و چنین محافظت بر سجع مانند ما و دعا کربوکا و ما قلا اینجا دیگه نگفت قلاکا بخاطر سجعه که در سوره ببارکه وجود داره خب و انگیزه های دیگر حس و تعمیم و اختصارن، و تعمیم و و تعمیم و دیگه چه هست تعمیم یعنی خرابی سازی سازی و التاميم با اختصار یعنی فراگیر سازی همراه با اختصار والله يدعو إلى دار السلام و الله می خواهد به سرای سلامتی دار هست. وال... وال... والله يدعوكم إلى دار السلام والله يدعوكم وإن حصف معمول در يدعوك در يدعو معمول يدعو وموبيت رميرة سنة شروع رميرة سنة والتعميم باختصار نحو والله يدعو إلى دار السلام أي جميع عبادهي والله يدعو جميع عباده إلى دار السلام أي جميع عباده لأن حف المعمول يؤذن بالأبوب مجزيرة حف كردن معمول آقاه بيكنات بهين كأبوب رمي رسولات في رمي رسولات؟ فسيكي انجيزها يا حاسب فراقل صازيست والأدب وانجيزها ديجار أدب هاسب نحو قول الشاعر ما نندي إن شير شاعر قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدة والمجد والمكارم مثلا جو سجو كاردي طلب كاردي برايتو اینجا حسفی انجام داره اما در سیدی بزرگی و مکارم برایت مثال و مشابهی نیافتی اصلش چونین قد طلبنا لك مثلا فلم نجد لك في السعدد والمجد والمکارمی مثلا یازده وتنزيل المتعدي <تصفيق> يا ذهبين مشه ديجنا دهبين وتنزيل ال... <تصفيق> بارد ده وتنزيل المتعدي منزلة اللازمي لعدم تعلق الغرضي بالمعبودي نحو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفروض آوردن فعل متعدين وتنزيل المتعدين منزلة لازم بمنزلة فعل لازم فروض آوردن فعل ب بمنزلة فعل لازم بخاطر خاطر اینکه غرضی به معمول تعلق ندارد لعدم تعلق الغرض بالمعمول بخاطر اینکه غرضی به معمول تعلق ندارد مانند قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بگو آیا مساوی هستند کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند اصلش ذریل هست قل هل یستوی الذین یعلمون الید و الذین لا یعلمونه. اینجا مفعول چگاریده است مفعول حذف شده است اگر حسف شده میشود ذکر میشود در موقعی که فعل به شکل متعدی بود میگه حذف گردیده است تا فعل به منزله لازم بگردد تا فعل به منزله چه بگردد پس وتنزيل المتعدي منزلة لازم لعدم تعلق الغرز بالمعمول وفايناوردنه فعل متعدى ب فعل لازم بخاطره متعلق نبودن غرزه به معمول معمول هبولي هاسك شد حصف شده پس اینجا یکی از انگیزه های همینه، حمیده یکی از انگیزه های حصف کردن چیه؟ همان تو که میبینیم اینجا معمول یعلمونه چه هست؟ شده است معمول یعلمونه و من الحصف اسناد الفیل الى نائب الفائل و حسب حصف می میشود اسناد کردن فعل به نائب فاعل. در واقع ما فاعل و فعل فاعل نداره و نائب فاعل داره این هم جزء حذف ویعدو من الحذف اسناد الفعل الى نائب الفاعل و حشمرده میشواد جزء حذف اسناد کردن فعل به نائب فاعل. فيقال فقد گفته میشواد حذف الفاعل للخوف به فاعل حاضر شده است به خاطر ترس از آن به خاطر ترسی که بر فاعل بوده است فاعل ذکر نشده است. او عليه یا به خاطر ترس بر فاعل یا ترس از فاعل یا ترس بر فاعل اول جهل یا فاعل حاضر شده است به مجهول بودنش، بخاطر تيش؟ مجهول بودنش نحو ماند سرق المتاع اه؟ اه، او للعلم به اه، او للعلم به يا فاعل حاس شو داس؟ بخاطر انك مشخص هاس؟ او الجهل، يا بخاطر مجهول بودنش نحو سرق المتاع در سرق المتاع فائل دان السنة شو تكيه؟ اه؟ دا دوز دانسته نمیشه لذا میگه سوری خلق بتا یا در این مثال خلق الانسان و ضعیفه؟ انجا اینجا فاعل معلومه فاعل چیه خلق الانسان و باءفا خال الله هست کیا بس اینا بودن انگیزه تا کار اکتفا میکنیم به این درس بوافق و پیروز باشید